حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روز به تر بلک هماندارت چون بلدی بخندی با چشم دل ببازیم با دل ببندیم از ما که سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا اجواه که درب سبزه پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام علیکم حالا اولتون چطوره؟ خوبی خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافیم اینجا رادیو پس فرداست چه خبر ها؟ آقا امروز روز اول آذر بود آه. خبر داریم امروز روز اول آذر بود به قول فروغ امروز روز اول آذر ماه هست من راز فصل ها را می ها؟ نبودی؟ چی بود؟ آقا راست اون روز اول دی ماه بود آقا هیچی ولش کن شاهر ماه رو فراموش کن یایتون باشه من فقط اول دی این تیکر رو بیامت تو برنامه یادم نده به حال امروز روز اول آذر بود و شمارش معکوس پاییز دیگه شروع شده بود چشمم بزنی شب یلداس هواسون باشی یادتون نره به قول شاعر گفتنی من میخوام با اعتماد تو به باردار برسم شاعر چه زیبا گفته اما امروز در ادامه بحث نفوذ که موضوع این هفتمونه میخوایم در مورد نفوذ سیاسی با هم حرف بزنیم یعنی تلاش دشمن برای رخنه بین بزرگان و یاران انقلاب و نشستن پشت فرمون انقلاب که البته کورخوندن تا آقامون هست خودش عمرم بذاره که پشت فرمون بشینه ما چطور دست فرمونش هم خوب آقا فقط یه کمی دست اندازا رو یه خود آروم‌تر شما راحت کنین دیگه ها اذیت می‌شن بعضی وقتا آره دیگه حال ما جهنم ماشین میگیم یه وقت شافنر بمونیم وسط رو پس امروز یک سلام مخصوص حرض میکنیم خدمت تمامی اعضای محترم شورای نگهبان که وظیفه خطیر پیدا کردن اناسور نفوزی و رد صلاحیت کردنشون در مقاطع حساس و خصوصا دم انتخابات به اهده دارن یه قوت جانانه هم میگیم به پرسونل حراست و گزینش ادارات و سازمان های دولتی که اونا هم گفت سفت و سخت همچی ما شالله جلوی سازمان و ارگان ایستادن اجازه نفوز و ورود عناصر غیرخودی و نفوذی رو نمیدن اینجوریاست، این نظام واسماس یعنی کلیش هم ماسماس پس شهرام سامی برو بریم که خیلی موضوع اساس امروز خانم آقایون دختر خانم‌ها به سرات چند روز پیش علی جنتی یعنی همون وزیر ارشاد خودمون راهی قم شده بود و با جمعی از مراجع و کله گنده های قم ملاقات کرده بود بعد که برگشت دفتر آیت الله مکارم شیرازی اطلاعیه منتشر کرد که حضرت آیت الله مکارم شیرازی در اعتراض به وضعیت نابسامان برخی محصولات فرهنگی حاضر نشدن که با آقای علی جنتی تو قم ملاقات کنن علی آقا جنتی هم نکرد دیروز به رسانه ها گفت که اصلا درخواست ملاقاتی برای دیدار با آیت الله مکارم شیرازی به خاطر کم بوده وقت اصلا نداده بودنم چه درخواستی و صرفا قرار بوده با چهار تا مرجع تقلید مشخص دیدار کنن دیدارهام انجام شده و تمام شد رفته برگشتن من نمیدونم زایه کردن یه مرجع تقلید حکمش چیه ولی ولی اما آقا مکارم که میدونید دیگه حتما خیلی معروفن که همه چیو حرم اعلام میکنن هی الان هم ما واقعا نگرانیم یه وقت مثلا با این کاری که علی آقای جنتی کرده یهو یه هم مثلا <تصفيق> کلن وزارت ارشادو و حروم اعلام کنه به پیکارش خلاصه مواظب باشین دیگه دوستان تو این وزارت خونه در خطر کلن حروم شدن به سر میبرین در حال حاضر <تصفيق> جانز سلام پسرم اکل حرفی قرگنت برم جلویم هردم حالا فکر میکنم این چند میلیون دلار ارزش این حرفها رو داره قابل نگاره قیه رو حواست باشه این الی هم که جدید اومده معط نیست که نفوذی باشه حرفهاشطنه آمیز رزیزم. بعد اون جریانم حالا زنگ به تلفونی شخصی خودم زنم آره آره باز آره, آره،, آره. نفوزی ها بعداً آره. تو برم خدا نگهدار قربونه آره. آره. آره. داره بعد برنامه شما تماس بگیر الان زایست دیگه حالا آره. وسط برنامه چیز نکنیم آورین آورین بله آورین مخلصیم آقا کیو گفت جدیو علی گفت جدی اومده الیو و سارا رو میگفت نه اینا خیالتون راحت باشه شما اکبر جان ردیف این ها که میان اینجا هم صافی گذاشتن دیگه منتظرم دیگه بعد رو برنامه آره برو آقا برو بلاشو oh, yeah. آقا فقط چک ماه پیش برگشت خورده اکبر جان. گفتم اینو بگم حالا که گفتی حالا هستی رو خطی چک ماه پیش برگشت خورده آقا یعنی چی زنگ بزن حالا حرف میزنیم باید اما اما خانم ها آقای اون دختر خانم آقای پسران دوستان و عزیزان و برادران توی همه امور داخلی ما دخالت کرده بودن به جز تنبون پا کردن ما که دیگه به این حوزه هم شکل خدا وارد شدن گوش کنین ببینین پوشیدن شلوار به سمت قبله مکروهه شما میدانید که اولا دستور داریم در آداب لباس بودن شلوارشو رو انسان میخواد بپوشه بنشینه بله. بپوشه این شلوار نپوشید, نپوشید. در روایت داره اگر کسی ایستاده شلوارشو بپوشه خدای متعال به دردی او رو گرفتار میکنه که درمان نداشته باشه بله یعنی از این به بعد یه قبله یا باد همچم هم رامون باشه که اگه یه جایی و نبه هر دلیلی شلوارمون رو آوردیم سامی جان حواست باشه هر جا شلوار رو در آواردی قاست دوباره بپوشی رو به قبله نپوشی به گفته این روحانی یعنی اگه وقت جایی بودی مثلا شلوار رو در ورده بودی بعد موقع پوشیدن نتونستی بفهمی فهمی قبل کدم وره احتیاط واجب اینه که پات نکنی تا اول جهت قبله رو پیدا کنی بعدا چیزیکن شلوار که میگم شامل زیر شلواری هم میشه هاشرام حواست باشه آره این هم حالا سرد این شبا به حال این روز و ایناس از زم زیر شلواری هم بعضی میشه اونم هست. اینا دیگه اگه جای خاصی شلوار بپوشین جهت قبله رو نمیدونید. همینجوری یه رو میگیری جلو، یه دستو میگیری عقب، میری با احترام در خونه همسایه بغلیو میزنی، ازش میپرسی ببخشید قبله کدوم سمته؟ حالا اینکه شخص سوال شونده با دیدن چون منظره منظری از شما و مواجهه با چنین سوالی چه واکنشی میده اون یه داستان دیگه است. یه نکته دیگه هم هستا. ببینید جهت قبله که فهمیدی زل زلتی هم پاتون نکنین. اول میشینین، بعد رو ا هرچیو که حالا در آوردیم پاتون می‌کنین یک کم سخت به هر حال میدونم ولی نشسته خود سخته ولی تمرین کنین به هر حال شدنیه خلاص دیگه توصیه نکنم آ یه وقتی هم که می‌بینین مثلا جای غریب هستین قبل نمام هم براتون نیست سخت براتون این مراحل رو طی کنین اصلا در نایرین شلوارو چی کاری آخه یه بار دیگه گوش کنین ببین چون چی گفتن یه بار دیگه چون مهم بودیم این مسئله. یه بار دیگه گوش کنین تاکید میخوام بکنم این مساله رو پوشیدن شلوار به سمت قبله مکروحه شما میدونید که اولا دستور داریم در آداب لباس بله. شلوارشو انسان میخواد بپوشه آه. بنشینه بپوشه بله. استاده شلوار نپوشی. نپوشی در روایت داره اگر کسی استاده شلوارشو بپوشه خدای متعال به دردی او رو گرفتار میکنه که درمان نداشته باشه بله خواستم فقط دیگه تحکیدی کرده باشم که بدونین آفرین. آقای منافی، آقای فرشید خان. این چیه؟ بله، برنامه 934 رو گوش می‌کنیم. دارم میگم دیگه قاطی بابا اویه. آقا چرا شلوق می‌کنی؟ بذار چرا واسه درحمت من صحبت نکن، باید خاموشت کنم حتماً. اه. آه داریم برنامه رو دا گوش میدیم 405 لس أنجليس هوا 30 درجه سانروف ماشین باز کولر روشن خوش نری ازم نمیخوای خوش ندی سابا داداش خیلی بعد صحبت می‌کنی با من یعنی چه معنی در وقتی من دارم برنامه ایجا می‌کنم وسط برنامه ایجا برنامه من پیغام می‌فرسی بز برنامه تموم میشه یعنی دنبالت کردم مگه جان نه بابا جون جونت تو وایسه من ببینم چرا اینجوری صحبت کرد نه من میخوام صحبت کنم باش باجاله دیگه چهرهامو سامي جلومو گرفتن گفتن خیلی باشه برو های با انداختی رفتی بنداز تو همت برگرد بیا توی واسلافسکی الان سه تا یعنی از لس آنجلس شما میری همت میاد تو واسلافسکی اینجا پراگ بندا اینا رو ردیفت میکنم آره فدات شم قربونت برم حواست باشه فقط سانروفو ببند سانروف ببند آقا بارونه برفه سرده شورا سان خیلی قاطیپاتی شدم چی میگم اگه امروز بعد از ظهر به نقشه وضعیت ها با هوای شهرهای ایران نگاه میکردین حسابی کیفور میشد اینا حالا چون این دوست همونم از لوسانجلس گفت سی درجه است و اینا هوا خیلی خوب بود و سانروفم هم با کرده بود و اینا بگم که یعنی ایران هم با هوای خیلی اونقدام سرد نیست یعنی اکثر آسمون ها صاف هوا ها هستن اصل پاییزی اون تا دیگه بارندگی خفن و این چیزا نبود یعنی دمای اکثر مرکز ها هم بین 10 تا 17 درجه بود به غیر از چند تا شهر خوشبخت جنوبی که از 24 تا 27 درجه را استاد کرده بودن تو تلافی اون همه گرمایی که تو تابستون کشیدن در بیاد یه جوری دیگه اینم بگم که روی مشهد و بجنور دو تا تیکه ابر هم چی اعصاب جو خوش کرده بودن ان شاء این عبر هم بتونیم با مذاکره باشون کنار بیایم که اگرم بخوام ببارن یه ببارن سیل به اما یه قوم بزرگی هستن توی ایران خیلی خوشنشینن ماشاءالله ماشاءالله یعنی هم بهار رو دارن توی جنوب غربی کشور هم زمستونای سرد دارن توی غرب کشور بله سرداران اسب سوار ایران لورهای عزیز راستی آقا با این همه نفوذ کسی هنوز به چوغا و شلوار دبی تو گیوه میپوشه؟ بهمون از خودتون خبر بدین والاسه که ان سیاه چادراتون همیشه پرصفا چوببازیتون به راه ساز و صدا دستمالای دستمال بازیتون هم رو هوا رو هوا بره بری که باهی کهی که ساو بزنی میکلو باه، گو بگویی میشه کاله حرف بکنم من ساز گار تو بزن کل باه کار تو بریست با تو باز گو بگویی میشه کاله حرف بکنم بع این که جما بونگم همه میر جل زنگل رشت نواند پوشنگو زدبی توز مخمر دار بگیری و اما بریم سراغ رادیو پاسورده جمهوری 935 امروز یک شنبه اول آذر 1394 اون یک تکرار برنامه میشن دوشنبه دوم آذر ماه اونایی هم که دانلود میکنن میشن هر موقعی از سال ممکنه بشنون میریم سراغ نفوذ سیاسی امروز همه دنیا به دنبال نفوذ در یک نظام مقدس باجندگی شماره 935 بدانید و آگاه باشید آن چیزی را که رهبران کشور شما به آن نفوذ می‌گویند در ادبیات سیاسی این روزها روابط بینالملل و های سیاسی نامیده می‌شود و اینکه هر چند وقت یک بار چندین نفر را به عنوان نفوزی و جاسوس و عامل بیگانه می‌گیرند و بعد هم ول می‌کنند نشان می‌دهد که نفوذ هم مثل همه چیز شل کن سفت کن دارد لکن این دم انتخاباتی مسلما آنها از سفت گیرندگانند ام در تلاش شبان روزی برای نفوذ کردن در قلب و اروغ و مغز و اعصاب شماهای رادیو پس فرشی جان یه شعر خوب از آقای سردن نقدی برد پیدا کردم بله موضوع ضد فرهنگ و تهاجم فرهنگی و اینم میخونن بعدم بدن دوستان خودشون سرچ کنن و طولانیشو بخونن به با توفنگش نتوانست شکارم بکند رفته با مطره با اینترنت و ساز آمده است نافگانش نتوانست محارم بکند رفته با لعبتک چشم نواز آمده است بمبو موشک نتوانسته به ترس آنندن. فیسبوک و توییتر شو احساز آمده اومده است شیمیایی زد و من باز عقب ننشستم با کراک و هروئین تاخت و تاز اومده است آبرین. چول لگن شد اثر ناو هواپیمابر پخش مهپاورز به ناز اومده است و ال این خیلی طولانیه باید خودتون برید سرچ بزنید و پیدا کنید به آورین آورین آورین البته احتمالاً شعر مربوط به عزیز دلانگیزی دیگه ای بود باشه دیگه چون سردار نقدی راقچه به شعر ولی هر کی گفته آورین داشته آورین خانم آقایون هر نظام سیاسی اصولاً بنای خودش رو بر یه چیزی می‌ذاره مثلا نظام های دموکراتیک اصلا اساس و بناشون بر رأی مردم و خواست اکثریت هر 3-4 سال یه بار هم این اساس رو به محک عمومی میذارن تو هم حق کسی زایی نشه و هم کسی سوی تفاهم برش نداره که مثلا این رفتون با حالانش اسیده یا آجی آجی مکه و دستی کسی بهش نمیرسه و هر کاری میخواد میتونه بکنه این نظام یه جورایی میگن مردم سالارن منطقه از نظر بعضی ها از جمعه هاجاغا علم راه نبوز سیاسی دشمن دروازه باز مردم سالاری در این مملکته اوکی پسی چی دیگه مردم سالاری بی مردم سالاری اما در نظام های بسته که چه کنم قفل شده ای مثل, مثل نظام مقدس جمهوری اسلامی بنای نظام بر چیزی نیست جز این که با هر زور و کلک و بدبختی که شده شما یه دشمن بر خودت بتراشی یعنی تو نظام مقدس جمهوری اسلامی دیگه ترین سمت رهبریه که خب اون عوض میشه دیگه حالا یه روز امام امته بعد که امام امت مشرف میشن اون دنیا میشه معظمله پس رهبر عوض میشه اما دژمن چیه ثابته اونم کیه آمریکاست یعنی پس لازمه که همیشه شما دژمنو تو بکراند داشته باشین توی همچین نظامی و همین دیگه بعد هم این دژمن مهمه خلا حالا کار این دژمن چیه خاصیتش چیه ببینید زیاد خاصیتاش اما نفوذ یکی از بدترین خاصیتهای این دشمن ددمنشیان است اصولا هر اتفاق بدی هر اتفاق چه بی سر و صابی هر هر چیزی بمونه تو کشور رو دستشون بمونه اینو میتونی بکنی تو حلق این دشمنه قل راحت رها کنید مثلا انتخابات میشه بعد شما میبینید اوضاع ریها اینجوریه که اون کاندیدای مورد علاقت رأی نمیاره بنابراین جفپا میری توی ریها صدای مردم در میاد بعد شما نه برمیداری نه نمیذاری میگه اصلا کل این ماجراها زیر سر آمریکا بوده حالا اگه یکم پیدا شد گفت بابا مگه دشمن بود اومد به شما گفت تقلب کنی که مردم صداشون در بیاد شما میگی تقلب کار دژمنه. بعد اون رئیس جمهور اسمه حمود نامتم که تو زرد از آب در بیاد هم حتی میتونی بگی دشمن در اون هم نفوظ کرده میبینی چرا خوبه آدم همیشه دژمن حاضر آماده اینجوری داشته باشه؟ کی گفت اصلا دشمن بده؟ خیلی خوب آقا دشمن خیلی خوبه سلام کن فرین ببینفرشه جان بولید. بهترین راه نفوذ من به دنیای امروز بله. شاید برنامه رادیو پسند در واقع من تازه ترین اخبار جدیدترین آهنگ و بیشترین انرژی و از صدای تو و برنامه توی که می گیرم تو هم که شدیم مثل خدا هی hey, واسه ما غبیاتن ما رو به لرزو رو بش می گفتم کن که آخرین سری برنامه رادیو پس اوور میکنین دو هفته که تشریف فرده بودین نه در, در دو دور بله بله. من شده بودم ان کف. کفار تو قام انقدر که همه جا بخبر. نگاه با روان من بازی نکن فشرد من به روان شما چیکار کرد می نیست که هیروش روش میدوی ضمناً بهم بگو که نظر مثبتت چیه برنامه رو خیلی عالی تو مثل تا به الان ادامه بدی تا زمانی که سرت موداره و چشمت سوداره مرسی مریم هم از قم خداحافظ مریم جان از قم بخوام به حرفت گوش بدم بعد همین امروز برنامه رو تعطیل کنم دیگه آخه سر من کجا موداره من کجا موداره سر من چرا منو توی موقعیت قرار میدی خیلی متشکرم کرم برحال نسیه از تماسه خیلی متشکرم. اما این هفته از شما خواستیم به همون بگین نظرتون در مورد واجه نفوز چیه و بگین حالا شده احساس کنیم بهتون داره نفوز میشه یا خودتون تا حالا روی کسی نفوذ داشتین یا سعی کردین به جا به جایی یا کسی نفوذ کنین ها بهمون بگین مثلا چه میدونم به نظر شما این دوجمنی که معظم له هیبش و بیراه میگه الانم بند کرده به نفوذش از چرا احی میتونه در ما نفوذ کنه دهان و دندان کانون گرم خانواده سوء استفاده از احساسات پاک آریایی ما یا نه اصلا نکنم اصلا فهم میکنیم با توجه به مداخلات ایران در یمن و لبنان و سوریه و عراق و ونزولا و 700 جایی دیگه ما خودمون اصل نفوزیم ستا کمن جنون نفوز ما رو بگیرن ها؟ لطفاً بگین نظرتون در مورد واژه نفوز چیه؟ نفوذ مسکن ها؟ این چی بود یه دفعه این وسط؟ خیلی ممنونم نه اون نیست نفوز و... و مسکنه چیز دیگه یه اینستاگرام آتش گفته من با شنیدن کلمه‌ی نفوذ زیاد شب بخیر می‌افتادم. ای بابا از قدیم آتش جان گفتن هر گردی گردون نیست. اینجا هم خب هر نفوذی شب بخیر نیست، هر شب بخیری هم نفوذ نیست و چیزه. حالا الان فرصت نیست و ایران بیشتر براتون مسائل باز می‌کردم ولی بخیالا ان توی اینستاگرام گفته من فقط یه بار یه میخ بهم به نفوذ کرد که منتون پاره شد ولی خودم توریم نشد خدا رو شکر. از اون موقع فهمیدم باید مواظب باشیم چیزی یا کسی زیادی بهمون نفوذ نکنه چون اتمالا آسیب می‌بینیم. میخ آخه کوچیک بود، بزرگ بود، میخته‌ویله بود. شباد خداشوک بخیر به, به خیر گذشته و حمید توی فیسبوک گفته که شما الان نفوذ کردین تو ماشین من. بله. شما دعوت کردیم ما هم دیدیم دیگه بی ادبی اومدیم دیگه. ال رادیو رو شما بچرخونیم ما نفوذمون قطع میشه. رفتیم. میگی نه می الان امتحان کن. به خدا مهدی توی فیسبوک گفته سلام به همه نفوزی های نفوز کنه نفوز و گل سرسبد همه نفوزی ها نماد جاودانی نفوز استاد اعظم منفذ شناسی فرشید منافذی ببخشید منافذی که سلام مخلصیم فرشید منافذی آخه چی آقا؟ این چه چرا اسم من چرا شوخی داریم با من؟ من, ش... من ترجیم میدم آقا فرشید اگر هم میخواین چیز بگین بگین چیز مثلا بگین فرشید همون منافی آقا چه اسم هایی میذارین نمیخوام نمیخوام اه. سوی تفاها میجاد میکنین منافی زیگه چی الان فارسی جون میدونه نفوذ از تو خانواده مشرو شروع شد از وقت این فارسی وان شروع به سریال ما اون موقعی با یه دختر حرف می‌زدین پوستمون میکنن الان خونه به جای رسیده که مام با دوست هم میام خونه جون مامان و بابا این قصه خوبه این قصه خوبه خدا خیرشون بده شما هم زیاد سو استفاده نکن دیگه از این نفوذ فرهنگی دیگه اه. حالا هفته یه بار دیگه اوکیه اگه خواستی تو دخترتو بیاری دیگه کلن بخواه خونه رو مکان کنی پدر مادرم اوکی باشن من اجازه نمیدم آقا یعنی چی؟ هر چیزی حدی داره زشت خب دیگه یعنی چی؟ آین نفوزاشون اه دیگه اه روحام اه 11 ساله از تهران نیمکت از کانادا آقا تیام قاسمی رضا از خودمون گراش مامان بابامون دبی هستن مردی برای همه فصول از پاسداران اردشیر البته مرضی از برای همه فرو گل از یزد دیتیام تیام ماونتن ویو گرگ راجونه داشت علی همشری کامران لس آنجلس سایناشین تهران ارسطوسد تهران هارون الفرشید منافی گوتنبرگ مملی از گوتنبرگ مملی نمیفهمم بیان چرا این اسما شیماجون از مالزی سیامک از مشهد کامبیز خسته و تنها آخی تورنتو تقاطع اول سمت راست بریم برسیم به کامبیز تنهاست خسته است دیار از مشهد شنبلیله از دماوند بهزاد و بهروز از مونیخ شاگولی از به بهزاد از نروژ تعدادی از بروچه هستن که امضا کردن پای برنامه ما رو در اپلیکیشن آیفون و آیپد و اینا پس ایمیل ماست دو بیست و هفت چهل و دو و ماست در فیسبوک گوگل پلاس ساوند کلاد اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید برامون کامنت بذارید تلفونهای پیامگیر ما دوسف 420 22 11 24 133 و 163 و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرند دوسف 420 به 226 21 79 39 کاغذ رموندی و انشای خود را با موضوع درباره نفوز هرچه میدانید بنویسید و خوز می نماید. مادر ما معتقد از کلیه شبکه های که پدر عزیزمون برای آنها چندین و چند خفل کودک گذاشته باعث نفوز کارهای زشت و بیتربیتی در خانه و خانواده می شود. و ایشان پس از اینکه کلی نفری نفاش و بدبیره بار پرالیمان کرد خدا را شد کرد که سازندگان محواره برای این وسیله غفل هم گذاشته اند و یعنی چه تزمینی وجود داشت که نباوه چشم پاکی مثل ما با دیدن این تصاویر به انواع و اخصام انهرفوت دوچار نشود با شنیدن این حرفها ما بسیار کنچکاف شده در سه سوت تمام غفل های محواره را شکسته و کانال رو که پدر من به اون علاقه داشت رو بیگ بررسی کردیم منطقه در آن جز تصویر گلوبوته و شبخیز که داشت برای ادامه کار شبکه پول جمع می کرد و یه شبکه که داشت به همه فوش باز رو می و یک شبکه دیگه اقا اجازه که اگر ما نگران سایز من هستیم از جل های آنها استفاده کنیم و اینا دیگه چیز دیگری نبود البته ما بعد متوجه شدیم که مقدار عزیزمان برای ما یک تله گذاشته بود تا ما تواناییمان در باز کردن خوفلها رو ایشان تست کند که بعد از این آزمایش مقدار ما مهواره به آن قشنگی رو توی کلی پدر من کوبیده از ایشان خواست براود یک مهواره درست حسابی بگیرد که شبکه هایش رو بشود یک جوری خوفل کرد که این طول سک نتواندان آنها را به این سرعت باز کند وقتی ما از من پرسیدیم که منظور ما پرسید ماما نزجل افضایش سایز چه بود؟ ایشان گفت منظور افضایش سایز مردمک که چشم بوده تا انسان بینایش بهتر شود. خوهد گرامی ما اقا اجزه است. یکی از راه های پیشرفت مملکت ما این است که راه های نفوز و کشور و بابستر شود به تویی که به بزرگ راه تبدیل گردند. ایشان ابراز امیدواری کرد که تعجه فرهنگی غرب به زودی به تجاوز فرهنگی تبدیل شده و از این به بعد تمام دانشجویان مبور چشماوی قد بلند با شخصیتی که به دختران چشم و مشکی خوشیکال ایرانی که خیلی بهتر از این دختر شیر برج و رفت های خودشونن علاقه دارن برای تحصیل به ایران بیاگند و اگر شد خواهر ما رو با خودشان به کشورشان ببرند و اگر دوست داشتن البته میتند در ایران هم بمانند و خواهل خیلی در این زمینه. نمیگیرد و مهم تفاهم و محبت و موجودی حساب بانکی اون حساب ارزییه ویناس دیگه و واقعا مسئائل دیگر هیچ اهمیتی ندارد در پایان از این همه نفوذ، پذیری خانواده خود ابراز شرمندگی کرده و از این انشا نتیجه میگیریم بادم باید هرجوری شده راه نفوذ خودش رو ببندد نقطه او اجازه تموم زندگی منم با صد کم نذاشت نیمه گم شدم میو چشم از رود بر نداشتم چشما تاسمونه بغ تبره اشکات بارون حتی باشه یه قط یه صورت فرشته با چشای شیتونین با نگاش منو میخواد و منم میگم ای جون. ما خوشمون بیاد خوشمون نیاد باید قبول کنیم که کلا عوامل موساد و سیا توی مملکت انقلاب کردن چه جوری اینجوری که الان شما اگه دوره مثلا بکنین تاریخ انقلابو کلشو بیان دوره کنین و اگه مثلا روزنامه های اوایل انقلاب رو بخونین 80 درصد اسامی که یاران نزدیک امام بودن و انقلاب رو به ثمر رسوندن، عهدهدار امور مملکت شدن، چند سال بعد یا ادام شدن یا فرار کردن یا برچسب به ضد انقلاب خوردن یا حذف شدن زندان افتادن، جرم مشترک همشون هم این بود که حالت دست آمریکا شده بودن یا میخواستن اسلام نام محمدی رو با اسلام آمریکایی تاخت بزنن. پس مسئول شدن تو نظام مقدس اصلا تضمینی برای نفوذی نشدن نیست گوش کنید علم علمالهاده چه توضیح در این باره میدن؟ راه نفوذ دشمن اینه که وقتی مردم بر حسب اطمینانی که دارن یا آقای رو انتخاب کردن فرستادن تو مجلس دشمن اونجا با ما کار داره قبل از انتخابات ما کار نداره دشمن غربال می کند. توی منتخبین مردم زمینه همکاری دشمن با چیه؟ اونجا نیروی خودشو انتخاب می کند اونجا میاد نفوذ سیاسی می کند بله اینجوری است. دشام میگفتم از یاران اولیه امام امت فقط اون چندهایی که عمرشون به دنیا نبودن اما اول به اسم الله ترور شدن یا یا جنگ مثلا شهید شدن یا فوت کردن هنوز به نیکی داره ازشون یاد میشه که اونا هم اگه زنده مونده بودن احتمالاً سرنوشو بهتری از منتظری و بنی صدر موسوی و وقیه و اینا پیدا نمی یه خیلی شانس میاوردن. می آوردن میشدن هاشمی رفسنجانی کلا <تص> نظام نظامهای مثل جمهوری اسلامی دو دسته آدم خوب داریم خوب که میگم این در حد قدیسا یکی گوشته شده ها یا به تعبیری شهدا هستند که دست و زبونشون از این دنیا کوتاه دردسری هم که خب درست نمی‌کنن هیچ کلی هم حاکمیت با چسبوندن عکسشون رو در و دیوار کار خودش رو میندازه دست دوم هم کسایی هستن که بدون چون و چرا و چش و گوش بسته در خدمت قدرت حاکم یا همون ولایت مطلقه فقیه باشن این دو دسته خوبان که ازشون با عنوان مثلا شهدا و والا مقام و پیروان رازین ولایت و راهروان را اسلام ناب محمدی و این چیزا یاد میشه بقیه دیگه از دم یا فتنه‌گران یا نفوزی دشمنن یا alat دستن یا آلت چه می‌دونم هر چیز دیگه‌ان و اینا مایه شرمساری نظام و انقلابن اینا دیگه و اینجاست که نقش سازنده و حیاتی دشمن مشخص میشه و ما متوجه میشیم آقا بیخود نیست انقدر دشمن دشمن میکنه دشمن برای جمهوری اسلامی از نون شب واجبتر است و حکومت بدون دشمنی که شبان روز در فکر نفوذ و ضربه زدن به نظام باشد مثل ماشین بدون سوختیست که اصلا راه نمی رود به جان خودم فری غریب سلام برو بریم سلام فرشی جان یه سال قیل رزشی تو آره لباس تو با کشوار خوش کردی؟ لباسمو به بسن... بالا نمیدونم چی شو... یادم نمی فکر نکنم نه فکر چطور مگه چی شد حالا گوت فرگه به تیم ملی فوتبال خودمون رپ داره خو؟ تو بازی با گوام به این صحبت های مجری ورزشی شبکه خبر سیما آقای علیرضا خرم گوش بدین همه چیز دستگیرمون میشه گوش کنید اما یه نکته عجیب و باور نکردید در خصوص تیم ملی تو بازی با گوام تیم ملی کمد لباس داشت به همین خاطر مهدی طارمی که همیشه شماره 17 رو می پوشید این بار 9 رو پوشید چرا چون که عزت شماره 17 رو که بازی قبل در نبود طارمی پوشیده بود با خودش برده بود جالبه اینکه از لباس 9 هم یه دونه بود چون یکیش امید ابراهیمی برده بود و تارمی تو هوای شرجی گوام بین دو لباسش رو با سشوار خشک کرد عجب. ما انتظار داریم کیررش ای با این مشکلات سکته نکنه و تا حالا نکرده شانسورد آره والا این ما رو اونو پوشیده اون ماره اینو به گفته مدیر تیم ملی آقای ابشیم پیرووانین تیم ملی سه ماه اسپانسر بین المده لباس نداره و دوباره بحث تهیه لباس از میلیون منیری پیش اومده تازه اونم با یه دست عجب فری بود میگم بریم اسپانسرشون بشین بهخدا پشت پیرنش بزرگ, بزرگ بزنن رادیو پسوردا لوگو بزنن خیلی با میشه. من که موافقم بحث لازم میتونیم تیمم بدیم باز میجلال آره. و جراب نوک 50 درصد که به ما محبوط میشه هل 50 درصد مسئولینم مطمئن نیستن اما بیا ببین ما همیشه از این 50 درصد مسئولین میخوریم ببین ولش کن اصلا بیخیال دیگه چه آره. خبرفری برد بعد از باخت سنگین چاریچه فرش دیشب رئال مادید مقابل بارسلونا کلی خبر بود امروز در این مورد زمزمه اومدن زیدان به جای بنیتز به عنوان سرمربی جدید رال به گوش میرسه اما کار برای ایرانی طرفدارای بارسا تو فضای مجازی کلی جوک ساختن مثلا اینکه داعش هنوز مسئولیت رال مادرید رو بر نگرفته یا داعش می‌خواسته بترکونه گفته ولش کن بارسا خودش میترکونه آره یعنی به نظر فاتح اصلی همه این مسابقه ها خود دایش خدا وکیلی. همه جا حرفش هست دیگه چی بگم والا؟ آره همه،, همه جا حرفش بله ممنونم از اتفری برز غریب باید خدافزی میکنیم تا فردا تا فردا خدا نگهدار. دار توجه کلیه ی سازمان ها و نهات ها و ارگان ها که دولتی و به محترم نگهبان دیگر نگران نفوذ و رهنه دشمنان و اناثر بابسته به غرب نب شرکت خدمات امنیتی حفاظتی ناپذیران به بلاویت مفتخر است با ارائه سیستم پیشرفتی نفوزیاب بسیرت دو افراد غیر بلاوی و نفوزی را با دقت بالاش شناسایی نموده و از تایید صلاحیت و ورود ایشان به بوستای حساس لشکری و کشوری جلوگیری نماید تشخیص اپتیکی با بررسی دیجیتال اناسور چهره شامل تجزیب و تحلیل ریش، جاگ مهر، مدل مو و شکل یخهی لباس و ساگر الیمان ظاهری تست بوگاوی با استفاده از سنسورهای حساس به بوی گلاب، اتر نرگس، مشک خوتن و ساگر اترهای های ایمانی های فوق حساس به رنگ با قابلیت ردیابی و تشخیص رنگ سبز حتی در لباس های زیر ترحس و هوشمند عقیدتی سیاسی همراه با نکابت انحرافی برای اندازگیری و تعیین سطح بسیرت متقاضیان و نمایش رندم تصاویر و پخش صدای مقام معظم رهبری اروا و در هنگام مصاحبه و سبت دقیق واکنش های ناخداگاه متقاضیان شامل فشار خون، زربان قلب، تغییر اندازه مردمک چشم و اندازه گیری سطح هرمون ها در خون برای اطمینان از درجه خلوص و ذوب شدگی متقاضیان او خود. او خود. با سیستم نفوز یا به پیشرفته بسیرت دو دیگر نگران نفوز اناسر دشمن نباشید شرکت خدمات امنیتی حفاظتی نفوز ناپذیران بلایت با سلام 21 و, و یک شنبه شب را ضمن تعجب از همینجوری بالا و بالا تر رفتن سطح اوجدار امنیتی در برخی کشورهای اروپایی با مروری بر مهمترین عناوین خبری هفته گذشته آغاز می‌نماییم. تاکید وزیر کشور بر حمایت دولت از تجمعات قانونی همزمان با لغو سخنرانی یک از چهره‌های اصلاح طلب به علت تهدید تندروها و نظر ناظران که بعضی جون به نظر میاد شما کلا چایدین با این حمایت کردنتون اظهارابت بابک زنجانی مبنی بر اینکه وی بعضی از رشوه ها به مسئولین را با هماهنگی اطلاعات سپاه برداخت می کرده و نظر کارشناسان که خب بچه های اطلاعات سپاه هم خرج دارن و اگه اونا اینجوری که سرشون بیکلا بمونه و مطرح شدن درخواست ممنوعیت فعالیت زنان در ادارابت توسط امام جمعه اسفهان و تشکر فعالان عرصی روکم کنی از روحانیون کشور برای تلاش موفقشان در زمینه کم کردن روی داعش <متصفح> سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب را شامل می این اینک مشهور خبرها با همکار خوشحوهنگم بوی بوی با سلام، مطابق ابلاغیهی قائم مقام وزیر سن از یکی از شرایط صدور مجوز خورده فروشی محصولات دوخانی رعایت حداقل فاصله 100 متری از مراکز آموزشی، فرهنگی، مذهبی و ورزشی است بر اساس همین ابلاغیهی فروش سیگار به صورت نخی هم در کشور ممنوع اعلام شد در همین رابطه یکی از کارشناسان ضمن انتقاد از ممنوع شدن فروش سیگار به صورت نخی در کشور به خبرنگار ما گفت با توجه به اینکه کشورمان یکی از قطبهای فروش سیگار به صورت نخی در دنیا می باشد این مسئله می تواند حتی در صنعت توریست نیز اختلال ایجاد نماید به افزود تعداد زیادی از سوریس های خارجی تنها برای این که بتوانند در ایران سیگار نخی تهیه کرده و مجبور به خرید سیگار بستهی یا باکسی نباشند به ایران سفر میکنند پایان مرشوه اخبار بله با تشکر از همکارم بل بلبل و تقدیر از توجه شما دوشبی دیگر و برامی دیگر شما را به خدا می سپاریم خیش تموم شده آقای میکروفون تلایی یعنی باقی این قدیم سیگار نخی مسئله مهمیه معلومه بلبل سیگاری نیستی نمی فهمیدیگه مثلا یکی دلایلی که تو ایران موندم همینی که سیگار نخیشی جای دنیا پیدا نمیشه بول بول یعنی چی هلی. اولا که نباید سیگار بکشین شما حالا حالت... اگه هم دیگه چه فرق میکنه که بستهی باشه یا نخی؟ ای بابا چقدر پرکی ها باید یه سیگاری باشی تا بفهمی بول, بول. بیا ببین بیا بیا اینم نتیجهش ببین اینا. این وضعیت ماست آقای میکروفون تله چه رو رفتیم یه باکس سیگار خریدین شمای بای همین دیگه آدم مجبور میکنن دیگه بل بول. از کجا مردم این مسئولین فردا داره یه بامبول دیگه در نهیرن سرمون باید ذخیره کردی دیگه باه؟ من که نمیفهمم چی میگین شما. ببین بول, بول من یه ای رفیق ایتالیایی دارم اسمش استفانو خوب اصلا سال همین سیگار نخری عاشق ایرانم من شده این استفانوه باری خیلی باره. شما دوست خارجی هم دارین پس بله بله باز چه زبونی با هم حرف میزنی؟ معلومه دیگه ایتالیایی دیگه. یعنی شما ایتالیایی بلدین؟ چی دسته کم گرفتی منو بولبولا؟ حداقل <تصفيق> یه جمله ایتالیایی بگین لطفا. بله که میشه مثلا ببین الان میخوام بگم یه سیگار نخی بگیر دود کنیم بگیم هی hey, استفانویانو یه سیگار نخیانو بگیر با هم دودیانو این <تصفيق> الان ایتالیایی بود هره البته خب ببین بول, بول بیشتر با نگاه ارتباط برقرار میکنیم مشکلی نداریم ولی میفهمیم باشه موفق <تصفيق> باشین من برم دیگه دکتر اومده بره بره به دکتریانو سلامیانو برسونیانو بره <تصفيق> 19 سال پیش در چنین روزی برابر بود دهم سفر سال 483 هجری قمری ارتش مغول پس از مدتها ها محاصره به شهر نیشابور نفوذ کرده و بیش از 1.5 میلیون نفر از ساکنان آن شهر را قتل عام نمودند که این تعداد تلفات هفت برابر بیشتر از مجموع مجموعه بمب اتمی بود که بر روی هیروشیما و ناکازاکی انداخته شد گفتنیست که ارتش مغول از آن زمان تا به امروز به عنوان قوی ترین و اولین سلاح کشتار جمعی تاریخ شناخته می شود و حتی خیلی از متخصصین در تلاشند حالا که نمی توانند بمب اتمی با آن قدرت بسازند حداقل یک بمب مغلی اختراع کنند و با شلی آن دمار از روزگار دژمنان درآورده مادرشان را به عذاویشان بنشانند. ماهواره ما از چند روز پیش هیچ جوری نشون نمیده. دیروز زنگ زدم خانم همسایه از شماره یکی از که همین تازگی‌ها برشون ماهواره نصب کرده بود بگیرم. شاکی گفت "شرمین جان من از کجا بدونم ما خودمونم ماهواره نداریم اینا ابزار نفوذ دشمنه. شما به فال نیک بگیر قطعی ماهواره‌تون." شاخت در آوردم. خودم همین چند وقت پیش دیده بودمش داشت از این سریال ماهر یا تعریف میکرد با اون یکی خانم همسایه. خلاصه من کلا تو شوک بودم تا امروز صبح که تو راپلا دیدمش. اول نشراختمش، چادر مشکی پوشیده بود، روشم کیپ گرفته بود جوری که جز دماغش یک کم چشاش پیدا بود. گفتم زری خانم امامزاده میرین؟ یا خدای نکرده مجلس ختمی چیزی؟ گفت نه دخترم، دارم میرم مسجد محل جلسه داریم. گفتم جلسه چی؟ گفت همه برای انتخابات مجلس شورای اسلامی گفتم زری خانم شما اهل این چیزا نبودین گفت هیچ وقت برای کمک به نظام مقدسمون دیر نیست تا میشه توضیح بیشتری بدین گفت بسیج محل شروع کرده داره برای اعضا جلسه توجیهی میذاره واسه انتخابات براخره ما تکلیف داریم که از رعایا مراقبت کنیم این نفوذیای دشمن نرند تو مجلس من تازه دوزاری افتاد که خانم همسی باز خودش یه با فاتی کماندو بوده و ما نمیدونستیم سری یکم خودمون جمع و جور کردیم قبول باشه ان خلاصه اجلتا رفتم دیش ماوراء ورداشم آوردم انداختم وسط حال تا یکم تحقیق کنم ببینم تو ساختمونمون کی بکیه بعد دور از ای شده آدم همش بعد نگران نفوذ یکی به یه جایی باشه مام نگران نفوذ بسیج در ساختمونمون بعد بشه گویا. فیلم جنگ ستارگان شروع شد ظاهرا. فیلم جنگ ستارگان شروع شد آه. بشینیم ببینیم. سلام کامران. <تصفيق> <تصفيق> چطوری؟ سلام فرشه نه خلاص چرا؟ تو این دو سه روز فرشه جان دو سه تا رکورد چک توی زمینه فیلم موسیقی تو این آمبریکای دشمن داشتیم که واقعا باور نکردنیه. چی بوده که یا زدن؟ اولیش محلوب میشه به همین قسمت جدید فیلم جنگ ستارگان با عنوان فریه برخواستن نیرو یا نیرو برمیخیزد به کارگردنی جی جی آبرامز بله که البته الان داره, داره, داره, داره, داره, داره, داره میشنیدیم نمایش شروع شده کامرا نکته همینجا سپسی جان فیلم هیچ ماه آینده قراره به صورت آی مکس و سبودی نمایش شروع بشه اما تا الان بیشتر از پنجاه میلیون دلار بلیت پرچش پیش فروش شده. کارشناسای هالیوود معتقد نگه دست مات جدید در جنگ سرگرم با این پیش فروش بالا پیش فروش بالا احتمال داره پر فروش ترین فیلم تاریخ سینما باشه. البته باید بیشتر از سینما آبی تر که 761 میلیون دلار فروخته بفروشه دیگه و بله خب این از سینما تو موسیقی کی زده رکورد چیکار بریم میگه شو بگیری. وُل، سارکار خودم عادل دو روز پیش سومین آلبوم خودشو به اسم 25 به بازار داده که تا الان بیشتر از 900 هزار نسخهش از طریق آیتونز فروخته شده و سه میلیون و 600 هزار نسخه سی دی بین فروشگاه توزیع شده که گفته میشه تا آخر هفته فروش سی دی ها از مرز یک میلیون نیم مم گذره. این آلبوم بوده زده شکنده اگه می‌خوای برو یغاشو بگیریم. بریم یغاشو بگیریم یکی از کاراشو مشنویم به اسم سند مای Love. و با خدافظی می‌کنیم تا فردا. تا فردا خودم می‌گه تر. خانم آقایون اون دجمن بد چیزیه الان ببینید آقا چی داره میگه از بدیهای نفوذ دشمن در ما هر جا فرصت پیدا کردن یک نفوذی کردن یک حرکت مضر برای منافع ملی انجام دادن بله اینجوری میشه که اهمیت جلوگیری از نفوذ سیاسی دوجمن تا اونجا پیش میره که جمهوری اسلامی حتی برای انتخابات هم شرط راز صلاحیت گذاشته کسانی رو که قرار مثلا مردم انتخاب کنن قبل از مردم میاد خودش انتخاب میکنه تا اگه خدا نکرده دوجمن نتونه به مناصب و پست‌های حساس مملکتی نفوذ بکنه شما تصور کنید اگه دشمنی وجود نداشت که قصد نفوذ داشته باشی چقدر کنترل انتخابات برای حکومت یعنی جمهوری اسلامی سخت میشو هر آن ممکن بود کلن ترکیب خدمتگزارا رو نظام تغییر کنه، آدمای قبلی برن، آدم های جدید بیاد. ولی الان دیگه جمهوری اسلامی بهانه ی جلوگیری از نفوذ دشمن حکومت رو دست به دست بین خودشون میچرخونن موقع انتخابات هم خودشون رو حالا چه برای مجلس چه برای ریاست جمهوری چه انتخابات های دیگه سوا میکنن بعد مثلا میگن مردم بیان از بین این عزیزانی که ما براتون دستچین کردیم به به انتخاب کنین هر کی رو دوست دارین اسمشینه راه نفوذ سیاسی دشمن رو با این کار میبندن ولی در واقع چیکار میکنن بگین بله دیگه و همین میشه که 20 سال پیش لاری ها و داردستشون توی مملکت پست و مقام داشتن الان هم دارن 20 سال دیگه هم بازم هستن این مصب یه جوری بین خودشون پست و مقام ها پاسکاری میکنن عمرن توپ و بازی به کس دیگه ای برسه به این میگن تیکی تاکای جمهوری اسلامی باقلاته باقلاته روزنامه روزنامه روزنامه امروز با خود. روزنامه فرهیختگان با اشاره به سخنان سردار فیروزآبادی در تقدیر از عملیات‌های نظامی روسیه امروز تیت زده بود که باید مثل روسها شفاف در سوریه مبارزه کرد. علنی صورتون خیلی شفاف مبارزه میکنین دو تا گردان طالب کشته زخمی دادین توی سوریه و عراق هنوزم میگیم فقط نیروی مستشاری فرستادیم اونجا و درگیر جنگ نیستیم. ثومه جوان به نقل از سردار نقدی امروز تیتر زده بود که بسیج وابسته به بودجه دولتی نیست. آقا رااس میگین یه سال نه اصلا اصلا پیش ما بودجه دولتی نگیرین بعد در چیزی از بسیج باقی منتشرید بری صحبت کنیم. بر روزنامه ابرار باشاره به جلسه محاکمه آخر بابک زنجانی امروز تیت زده بود که آیا بابک زنجانی قصد کلاهبرداری از نیروی انتظامی را هم داشته است. والا اینجوری که شواهد و قراره نشون میده بابک زنجانی فقط از سرخبوستای امریکای شمالی و یه یه قبیله تو آمازون کلا برداری نکرده والا الان جیباتون رو چک کنین سریع هرچی کمه اون زده فرصت امروزمون هم رو به اتمامه تنهایی این روزا درد مشترک ما آدماست. شاید مشکل اینه که ما آدما خیلی وقتا به هم فرصت نمیدیم تو همدیگه رو بشناسیم و فقط از مقابل هم عبور میکنیم درست مثل آدمایی که توی دو تا قطار نشستن و قبل از حرکت قطار برای یک لحظه نگاهشون درگیر هم میشه و بعد قطارها را میفتن و آدم ها برای همیشه از مقابل هم می‌گذرن. کاش میشد قطارها رو متوقف کرد کاش میشد لا قبل از اینکه سوت حرکت قطار به صدا در بیاد پیاده شد و به کسی که تا چند لحظه پیش جز نگاه و لبخندی از پشت شیشه قطار نبود فرصت آشنایی داد توی ایستگاه زندگی برای رفتن و گذر کردن همیشه قطار هست اما آدمها تکرار نمیشن و برای موندن و آشنایی فرصت خیلی کمه شبتون پر از عشق و خالی از تنهایی تا فردا تو از جنس چیستی اهل مهری یا که ما از خود بی یا که آگاه اهل روزی یا اهل شب از اش خالی یا لبالا من کیستم از جنس چیستم اهل شادی یا آن که در از عشق گرمم یا که اهل آبم یا آن که خاک از زمینم یا از افلاق ما کیستیم از جنس چیستیم اهل عشقیم یا که لبخند؟ از آزاد یا که دربر به زنجیرین یا که رب از کم و بیش ماجده